فصل 18. از زمین اسکیت که زدم بیرون گرستم شد اول رفتم فروشگاه و ساندگیجه پنیر سوسیسی با شیر مالدار خریدم و بعدش رفتم تو باجی تلفن دیدم بعد نیست دوباره به جین زنگ بزنم ببینم رسیده خونی یا نه اصری بیکار بودم و دوست داشتم زهنگ بزنم ببینم خونست یا نه تا با هم بریم بیرون یک بزنیم. تا حالا باعش سالن نرفته بودم فقط یه بار اونجوری دیده بودمش. همچین بد به نظر نمیرسید تو مراسم چهارم جولای بود اومخت و زیاد نمیشناختمش ولی گمون نمی کردم روزی بخوام باهاش بیرون برم. با یکی به اسم الپیک می پلکید همون که میرفت مدرسه کویت من؟ یارو خوب نمی‌شناختم، ولی همیشه دور وور سخت پلاس بود. مایو لاتکسی تکسی می و میرفت رو بلندترین دایی و از اون بالا پشتک میزد تو فقط پشتک زدم بلد بود اما شدیدم فاز آدمایی تو ویترینی و بر داشت. بر و بازی گنده و اقله کیش میشی. اون شب جیم با این بابا قرار داشت نمیفهمیدم. خدا نمیفهمیدم. بعد از اینکه بیشتر با جین آشنا شدم ازش پرسیدم چرا با آدم روموخ مخ خود شیفته این الپایک قرار میذاری جین قبول نداشت طرف خود است می گفت بنده خدا کم بود محبت داره طوری رفتار می‌کرد انگار دلش به حال پسر میسوخت و اینکه نمیخواست ناراحتش کنه جدی جدی هم این طوری رفتار می‌کرد همین با بامزه است هر بار بهشون میگه طرفشون چه آدم هر هارومزاده یه در میان که طرف که هم بوده محبت داره. چه واقعا واقعاً که محبت دارن نمیدونم اما دلیل نمیشه که آدم اینقدر نمک به هاروم باشه. آخ از دست این دخترا عمرم بفهمی تو سرشون چی میکسره یه دوستی داشتم به اسم روبرتو والاس که یه بار هم‌اتاقی‌شو با یکی از دوستام رفیق کردم. اسم دوستم باب رابینسون بود و قشنگ کم بود ماه داشت چون سروازش زیاد خوب نبود و بابت پدر مادرشم خجالت میکشید آدم عوضی نبود خیلی هم پسر خوبی بود ولی این هم اتاقی روبرتو والاس اصلا ازش خوشش نمیمد به روبرتو گفته بود طرف زیادی مغروره فقط به خاطر اینکه باب بهش گفته بود سرگروه تیم مناظره مدرس هست همین مشکل اینطور دخترها اینه که اگه کسی از کسی خوشش بیاد دیگه براشون مهم نیست طرف چقدر عوضی و کم بود محبت داره یا نه اگه خوششون هم نیاد اون وقت مهم نیست طرف چقدر خوبه یا کم بود محبت داره یا نه راحت میگن فلانی مغروره تمام حتی دختر باوهاش هم همینطوریان حالا دوباره به جین زنگ زدم باز جواب تلفن رو نداد منم قطع کردم بعد دفتر تلفنم گشتم ببینم برای عصری با کی میتونم قرار ردیف کنم مشکل این بود که تو دفتر تلفنم فقط اسم و شماره سه نفر رو داشتم. جین یکی به اسم آقای آنتولینی که وقتی الکترون هیلز بودم معلمم بود و همونطور شماره دفتر کار بابام یاد هم میرفت شماره بغیر وارد کنم آخر سر به کالو زنگ زدم بعد از اینکه از مدرسه ووتون رفتم فرق و شده بود سه سال ازم بزرگتر بود و خیلی ازش خوشم نمیومد ولی آدم روشن فکری بود بالاترین آی مدرسه رو داشت به خاطر همین گفتم با هم شام بخوریم و یه گپی بزنیم هم روشن روشنفکر بود همی که حرفای روشن فکری خوبی میزد و ایش زنگ زدم الان تو دانشگاه کلمبیا درس میخونه خونه خونشون خیابون شست و پنجم بود میدونستم خونه است وقتی اومد پای تلفن گفت شام نمیرسه ولی میتونه ساعت ده منو تو بار ویکر تو خیابون پنج و چهارون ببینه گمونم از شنیدن صدام تعجب کرد گمونم یه بار بهش گفته بودم مردک جلی کله کدو تا ده شب کلی وقت داشتم چی کار میکردم؟ رفتم رادیو سیتی فیلم ببینم ترین کار ممکنه انتخاب کردم خب به هم نزدیک بود و جای دیگه ای به ذهنم نمیرسید وقتی رسیدم نمایی شروع شده بود. گروه راکتیز داشت شلنگ تخته می دست و زنجیر شده بود و پاها بالا پایین می رفت. هم عین چی دست می زدن. یا رویی که پشت سرم نشسته بود به زنش می گفت میدونی چیه؟ خیلی نمایش توپیه. آخ که حرفش بد جور رفت رو عصابم. بعد از این گروه یارویی تاکسی و پوش و اسکیت به اومد وسط صحنه و شروع کرد مارپیت زدن بین چند تا کوچیک و جگ گفتن اسکیت باز خوبی بود ولی زیاد نمیتونستم باش حال کنن راستی چرا؟ آه چون مدام تصورش میکردم که داره این حرکات رو تمرین میکنه تا جله تماشاگر رو کم نیاره خیلی ابلهانه بود گمونم رو فرم نبودم بعد از این یارو برنامه مخصوص رادیو سیتی برای کریسمس اجرا شد و از سوی جعبه فرشته‌ها و آدم صلیب به دست در بیشتر از 100 نفر بودن همه با هم شروع کردن به خوندن بیایید ای همچین شلوغ پلوغ میکردن که نگو مثلا باید فضا معنوی میشد و همه احساساتی میشدن ولی به نظرم نه معنوی بود نه احساساتی فقط یه مش بازیگر بودن که دور صحنه صلیب دستشون بود. وقتی کارشون تموم شد و شروع کردن به بیرون بردن ها تابلو بود که منتظرن همه چیز تموم شد تا برن سیگار کوفتیشونو بکشن. این برنامه رو سال پیش با سالی هیزم اومده بودم و مدام میگفت خیلی خوبه. میگفت همه چیزش خوبه. بهش گفتم اگه مسیح این صحنه رو به چشم میدید حالش بد میشد دیدن این همه لباس و زرق و برق علکی قطعا به همش میریخت. هم گفت من که اصلا جزو آدما حساب نمیشم که بخوام درباره همچین چیزایی نظر بدم. کافرم دیگه. و نظرم مسیح از اون که تو ارکستر تبل میزد خوشش میومد. از 8 این یارو رو میشناسن. من و برادرم ال اگه با مامان بابا می رفتیم تماشای برنامه حتما جایی می نشستیم که بتونیم اونو ببینیم. بهترین تبل زنیه که دیدم. تموم اجرا فقط دو بار پیش میاد که تبل بزنه ولی خیلی شیک و شست رفته سرعتش هم یه حالت عصبی پیدا میکنه وقتی با پدرم رفته بودیم واشنگتن البراشی کارت پستال فرستاد البته مطمئنم که هیچ وقت به دستش نرسید آخه آدرس دقیقش رو نمیدونستیم بعد از اینکه برنامه کریسمس تموم شد عذاب بزرگ سر رسید اونقدر گند بود که نمیتونستم ازش چشم بردارم. داستان یه مرد انگلیسی بود به اسم الک طرف میرفت جنگل و رو از دست میداد و میافتاد بیمارستان. اعصابه دست و لنگون از بیمارستان بیرون میومد و دوره میافتاد تو لندن. دیگه خودش رو نمیشناخت. آقا مثلا دوک بوده. ولی الان یادش نیست. بعد با یه دختر مهربون و خوبی تو اتوبوس آشنا میشه. کله دختره رو باد میبره و اون براش میگیرتش. بعد میرن طبقه دوم اتوبوس کنار هم میشینن و درباره چارز دیکنز حرف میزنن دیکنز نویسنده محبوب هر دوتشونه بعد هر دوتشونم اتفاقی دارن اولیور تویست میخونن دوست داشتم بالا بیارم حالا سره همین که هر دو از دیکنز خوششون میاد جا به جاهاشقه هم میشن و یارو به دختر کمک میکنه کاروبار انتشاراتش ردیف کنه دختر مثلا ناشره ناشره ولی وضعش زیادی خوب نیست چون برادرش آدم دائمال خمری و حسابی پول خراب کنه برادر خیلی آدم داغون و مزخرفیه طرف تو جنگ دکتر بوده و به خاطر مشکل عصبی که پیدا کرده دیگه نمیتونه عمل کنه به خاطر همین به زهرماری رو آورده اما کلن آدم باهوشیه. آقای ارک میشنه یک کتابی مینویسه و دختره منتشرش میکنه و کلی پول دار میشن همیچی برا ازدواج معیاس که یهو سر و یه کسی به اسم مارسی پیدا میشه مارسی نامزد سابق الک بوده یعنی قبل از اینکه حافظش بپره خانوم آقا موقع امضا کردن کتابش شناخته به الک میگه که دوکه ولی الک باور نمیکنه حتی دوست نداره بره رو ببینه آخه مادرش نابیناست ولی این یکی دختره همین دختر مهربونه مجبورش میکنه بره خیلی دختر ماهیه آقا هم میره ولی بازم چیزی یادش نمیاد نه وقتی که سگش براش تکون میداد نه وقتی مادرش صورتشو لمس میکنه و نه وقتی خرسی کچولی بچگیش رو براش میارم ببینه اما یکی از همون روزا موقع بازی کریکت بچه ها تو چمن توپ میخوره تو ملاجش یه های همه چی یادش میاد اون وقت بازم دوک میشه بعد اون دختر بند خوده این ناشه رو فراموش میکنه اگه نمیترسیدم ممکن بود بالا بیارم بقیه داستانم تعریف میکردم من چیزی و لو دادم حسن چیزی برای لو دادن داشت. آخر داستانم این میشه که الک با دختره ازدواج میکنه و برادر طرفم حالش خوب میشه و دیگه میتونه عمل جراحی کنه و مارسی خانومم میشه سهمش صحنه آخرش هم اینه که همه گی دور میز نشستن شام میخورن و خوشحالن. تازه سگ طرفم با کلی طوله میاد تو اتاق. همه تو سینما فکر میکردن سگ نره. دعنها اینه که اگه میخوای بالا نیاری فکر تماشای فیلم از ذهنت هم نکنه اینکه زن کنار دستیم از اول تا آخر فیلم گریه میکرد بدجور رفته بود رو هر هرچی فیلم جلیتر میشد خانم به بیشتر گریه میکرد خیال میکنی لابد از روی خوشقلبی گریه میکرد ولی من که کنار دستش بودم میگم نه هیچم قلب نبود بچهش باهاش بود که خوشحالش این چیز سر رفته بود و میخواست بره دستشوی ولی خانومه از جش جوم نمیخورد مدام به بچهش میگفت به تمرک و معدب باش فقط گرگ میتونه اینقدر قلب باشه از هر ده نفری که جلوت به خاطر همچین جلی عشق میریزن نه نفرشون ته آدم عوضی باور کن. فیلم که تموم شد راه افتادم طرف ویکربار و کارلوس اونجا قرار داشتم تو به جنگ فکر کردم. اینطور فیلم های جنگی همیشه به فکر میندازنم. گمون نمیکنم تحمل جنگو داشته باشم؟ نه نه نه واقعا ندارم. اون وقت میبرنت بیرون تیر می‌خوری میمیری. ولی اینطوری نیست. آدم بعد کلی تو ارتش بمونه سختیشم هم واقعا همین جاست. دیوی دیو چهار سال آزگار جپه بود جزء کسایی بود که تو ساحل نورماندی پیاده شد ولی گمونم بیشتر از اینکه از جنگ بعدش بیاد از ارتش بعدش میاد. اون موقع بچه بودم ولی یادم مرخصی ها که میومد خونه فقط میرفت رو تختش دراز میکشید. به زور پاشو تو پذیره ای. وقتی برای ماموریت رفت خاور دور و افتاد وسط جنگ نه زخمی شد نه کسی ها کشت کارش این بود که با جیب یکی از این ژنرالا رو این طرف اون طرف ببره. یه بار به منو هل گفت اگه قرار باشه تیراندازی کنه، حتی نشونگیری درست هم بلد نیست. گفت ارتش ما هم کم از حزب نازی نداره. یادم میاد عل ازش پرسید چون نویسنده است، جنگ رفتن براش خوب نیست و اون کلی داستان برای نوشتن داره. باهل گفت بره دستکش‌های بیسبالش رو بیاره. بعد ازش پرسید روبرت پروک شاعر جنگی بهتری یا امیل دیکنسون؟ عالم گفتی کانسون خودم زیاد از این چیزا سردر نمیارم چون خیلی شعر نمیخونم ولی میدونم اگه تو ارتش باشم و هم خدمتیام دادم این آدمن اکلیو استردلیتر و موریس باشن و باید مدام باهاشون رژه برم خول میشم تو مبادا فقط یه هفته عضو گروه پیشاهنگ بودم و تا به تحمل تماشای پشت گردن نفر جولیمو تو صف نداشتم مدام به هم میگفتن نگام به پشت گردن جولیم باشه به خدا اگه جنگ دیگه ای باشه بهتره ببرنم جلوی جوخه آتیش اعدامم کنن چی کم در نمیاد جالبه که دیبی از جنگ متنفر بود ولی تابستون سال قبل وادرم کرد ودا با اصله را رو بخونم میگفت محشره همین تزددش رو نمیفهمم تو یه آدمی بود به نام سرهنگ هنری که قرار بود آدم خوبی باشه نمیفهمیدم چطوری دیوی از ارتش و جنگ متنفره ولی آدم جلی مثل این سرهنگ هنری رو دوست داره مثلا نمیفهمم چطور آدم میتونه همچین کتاب مزخرفی رو دوست داشته باشه تازه از اون طرف هم رینگ لاردنر رو دوست داشته باشه هم گتبی بزرگ اینو که بهش گفتم ناراحت شد و گفت حالا حالا برام زوده که درک کنم همچین چیزایی گفتم از رینگ لاردنر رو گتبی بزرگ خوشم میاد. واقعا هم میاد. گادسبی بزرگو که نگو نفرس که چقدر دوست دارم آقای گتسبی رفیق خوب میمیرم براش همچین ناراحتم نیستم اون بمب اتم رو اختراع کردن اگه جنگ دیگه ای در کار باشه میرم روی بمب میشینم که باش پرتم کنن به خود و خودم داوطلبانه این کارو میکنم